امروزه بانک جمهوری ایران در ایران پریاد می شود و اغلب روشنگران، روشن فکران نمیدانند که این جمهوری ایرانی چه معنایی میدهد. من سال های که این ایده را در کتاب هایم و به روشنی بیان کردم که فرهنگچر یا مردم شاهی حکومتی بوده است که مردم ایران هزارها در پرهنگشان میخواستند. و این مردم شاهی چیزی؟ جز جمهوری ایرانی نیست این ایرانی معنای توهی و خالی از معنی ندارد این جمهوری ایرانی به معنای این است که ما حکومت و جامعی میخواهیم که بر پایه فرهنگ ایران بنا شود دارای محتویات فرهنگ ایران باشد ما باید این فرهنگ اصیل ایران رو بشناسیم. فرهنگ ایران بر این اصل استوار است که مردمان از هر قوم و قبیله و دین و مذهب و ایدئولوژی و طبقه ای که باشند، اراده کنند که بر پایه خرد انسانی خودشان با هم زندگی کنند. و با, با بر پای خرد انسانی خودشان با هم درباره بهبود زندگی اجتماع خود در این گیتی بیاندیشند خرد اساسا خرد در فرهنگ ایران چنین معنایی دارد مفهوم خرد رو باید از مفهوم عقل در زبان عربی و از ترجمه واجه های مثل راسیو و ریزان و فرنوفت آلمانی جدا ساخت اینها پدیدههای جداگانه هستند ما دربار این خرد این مفهوم خرد در ایران رابطه با حواس دارد از حواس انسان در رابطه با گیتی خرد زایده می شود خرد چیزی مربوط به فراتوی این جهان نیست قداست جان انسان یعنی قداست زندگی انسان برترین اصل فرهنگ ایران است یعنی ارزشی فراتر از این در فرهنگ ایران است و طبعا نخستین اصل حکومت یعنی جمهوری ایرانی نیز اندیشیدن همه مردمان دباری جستجوی شیوه های همزیستی زندگی ایجاب قداست جان ایجاب جستجوی شیوه های همزیستی همجانی می کند همزیستی هم جانیست تبعا هم است فرهنگ ایران چون که خرد زاده از جان از زندگی است. در فرهنگ ایران خرد, خرد چشم جان است چون پنری خرد از جان میتراود از جان پیدایش مییابد خرد چیزی نیست که از آن طرف به ما هدیه داده شده باشد نه خرد است که از زندگی میتراود بنابراین مسئول نگاهبانی و ساماندهی زندگی همین زندگیاست فرهنگ ایران در پی آن نیست که معلوم کند که دین یا مذهب یا ایدئولوژی که حقیقت منحصر به فردا دارد کدام است فرهنگ ایران کار کاری ندارد که معلوم کند که دین حقیقی مذهب حقیقی ایدئولوژی حقیقی که منحصر به فرد است کدام هست؟ و آن را ترویج و تثبیت کند و آن را بنیاد و جامعه و حکومت کند این فرهنگ ایرانی برای این ایده بنا شده است. چنین کاری بر ضد مفهوم خدای ایران است. ببینید جمهوری ایرانی هنشید. چنین کاری بر برزد مفهوم خدای ایران است. که همگوهر خود انسان هاست. خدای ایران اصل جوگندگی و پجوهندگی و آزمودن هست. نه خدای حمدان. که همه چیز را برای مردمان از پیش معلوم میکند که علم کل دارد این خدای ایران نیست که قرآن مینویسد که تورات مینویسد که انجیل مینویسد اینها با خدای ایران هم گوهری ندارن. خدای ایران اصل جویندگی و پجوهندگی و آزمودن هست اصل تحول هست اصل دگردیسی و تغییر هست اصل همیشه تازه شبیه هست از این رو گوهر انسان اصل نوآوری و ابداع و ابتهکار اجتماعی است و بر ضد تعیین کردن دین حقیقی یا مذهب یا ایدئولوژی حقیقی است چون اینها مانع می میشوند مانع ابداع میشوند میگویند یارو بدعت کرده است بدعت کردن نوآوردن آوردن می شود بزرگترین ننگ بزرگترین جرم و جنایت در جامعه این بر ضد فرهنگ ایران است جمهوری ایرانی بر این چنین ای بنانه می شود گوهر انسان اصل بدعت است اصل نوآوری، اصل همیشه شوی. هم همزیستی اجتماعی بر خرد مردمان استوار می باشد. حکومت از مردمان پیدایش پیدا می از خرد سامانده مردمان پیدایش می خرد سامانده در هر انسانی هست، فطرت هر انسانی هست. همزیستی اجتماعی بر خرد مردمان استوار می باشد که برای پاسداری، و پرستاری از جان همه انسان ها با هم میاندیشن مسئله اینیست که یک کتاب معلوم کند که ما با چی کار بکنیم یک ایدئولوژی یک قرآن انجیل تورات گاتا اینا هیچ حق ندارن این کار رو بکنن همزیستی اجتماعی بر پایه خرد خرد که؟ خرد مردم خرد انسان که اینها با هم بیاندیشند این با هم اندیشی رو میگفتند همپرسی این واجه را در اثر کاری این مترجمان ما خرقاتی کردند با همه پرسی رفراندوم به همه پرسی. این یک غلط است فرهنگ ایران واجه های خودش رو دارد همپرسی یک مفهوم خیلی گسترده دیالوگ است خدا با انسان همپرسی میکند خدا به انسان نمیاموزد انسان با خدا همپرسی میکنند انسان ها با هم دیگر همپرسی یعنی با هم میگویند با هم میاندیشن این را میگویند همپرسی همزیستی شما بر پایه خرد مردمان در همپرسی ایجاد میشود فرهنگ ایران قداست جان را سرچشمه سامندهی اشتماع میداند فرهنگ ایران خرد را چشم جان و زندگی می داند. یعنی چی؟ یعنی خرد انسان است که زندگی انسان را باید نگاه داری بکنه و سامان بدهد این ساماندهی سر اولیه خرد در انسان است خرد اصل سامانده است یعنی می آراات یعنی نظر و ترتیب میدهد یعنی خودش قانون میگذارد ما احتیاج به شریعت نداریم احتیاج به کسی نداریم که برای ما قانون بگذارد خرد انسان قانون میگذارد جمهوری ایرانی معنایش این است خرد انسان زاده از جان انسان درگیتی است و طبعا خیشکاریش پرورش و نگاهداری زندگی همه مردمان بدون هیچگونه تبعیضی در این گیچیز خردی که از زندگی می جوشد اصل سامانده است. سامان و جای سامان مانند خشتره که بعد شر شده است به معنای حکومت هست ببینید این واجه خشتره که شر شده است هم معنای جامعه دارد هم معنای حکومت این همانی حکومت و جامعه یعنی چی؟ یعنی حکومت از جامعه پیدایش می اینها باید با هم دیگر این همانی داشته باشن اگر این همانی داشته باشن نه اون حکومت حکومت هست نه اون جامعه جامعه از خرد انسان است که حکومت و نظام و قانون پیدایش می آباد از خرد انسان برای این خاطر بود که بهمن اهمیت داشت در هر انسانی خرد سامانده یعنی خرد اجتماعات و حکومتها و قانونتها خرد سامانده یعنی چی؟ این خرد برای برگزیدن اینوان نیست نه خرد نیروی مبده است ابداع می کند خودش از خودش سامان میدهد نیاز به قیم ندارد نیاز به وکیل ندارد نیاز به آقا والسر ندارد نیاز به امام و رهبر ندارد نیاز به پیشوا ندارد در هر انسانی خرد سامانده یعنی خرد اجتماع ساز. قرآن اجتماع نمی سازد. ایمان اجتماع نمی سازد بلکه خرد انسانی اجتماع می سازد خرد انسانی حکومت می سازد خرد انسانی قانون می سازد بهمن که خرد سامانده یا ارکه ارکه یعنی اثر نظر این واژه در واجه های اروپایی مونارکی هیرارکی اینا همش آنارکی انارشی اینا همش از همین واژه ارکه در ایران سرچشمه می گیرد بهمن ارکه است. خرد ساماندی یعنی اصل نظم است ها به قطب و محور دوک چرخلیسی ارک می گویرند. یعنی چی؟ یعنی این قطب و محور همه چیز. خرد همه پر را روی این بنا شده خرد انسانی چنین اصلی است، خط به همه چیز است. در هر انسانی این خرد تحول به ارتا مییابد. ادالت عدالت، حق و قانون باشد. خرد انسانی چی می شود؟ پیدایش خرد انسانی چی هست؟ و حق و قانون. باشه. و و و حق و قانون باشه. این بهمن است. یعنی خرد بنیادی آفریننده در هر چیزی در دنیا این بهمن است که در چهره ارتا آشکار می شود یعنی خرد چی می شود؟ پیدایش خرد ادارت و قانون و حق است که اینها را ایرانی با داد می گفت. به عبارت دیگر حق و ادارت و قانون از خرد بنیادی انسان در همه انسانها پیداش مییابد همین بهمن که خرد سامانده هر انسانی هست در میان مردمان تبدیل به اصل همپرسی و هماهنگی و همبستگی میان مردمان میگردد خود همین خرد خرد سامانده مردم را همپرس میکند هم آهنگ می کنند، هم بسته می کنند. به ایمان نداریم که ایمان ما ها را در یک دین در یک کلمه با هم پیوسته بکند در اثر ایمان آوردن به یک کتاب به یک وحدت به یک ایدئولوژی ما با هم پیوسته بشیم نه این پنبستگی تراوش و جوشش از خود خرد است. هم پرسی همون دیالوگ است. انسان در اصل در رابطه همپرسی با خدا قرار دارد این خیلی فرق دارد با ایده اینی که یک نبی برگزیدی، یک فرستاده یک مصطفی از خدا فرستاده می به ما و نه بکند که چی کار بکنیم چه خوب بد است چی بد این بنیاد جمهوری ایرانی نیست این با خدا هم پرسی میکنن با هم میشنن حرف میزنن گفتگو میکنن اولین چیزی را که سیمور خدای ایران به زال آموزد هنر گفتگو با خداست شاهنامه را یک دفعه بخونید اولین کاری که اولین چیزی را که زال از سیمور یاد میگیرن هنر گفتگوست نه هنر امر و نه تهدید که آقا ورول فرعون رو تهدید بکن برو مردمان رو پنزر قم فنزار برخیز و بترسون، به وحشت بینداز ما چنین جمهوری نمیخوایم چنین حکومتی نمیخوایم فرهنگشه استوار بر برابری مردمان است نه در اثر ایمان اخوت دینی بین مؤمنان ایجات بشود اینکه برابری نیست خودی و غیر خودی ایجاد می شود گروه و فراگروه گروه جاد می شود خارج از گروه ایجاد می شود همه مردمان برابران چون مردمان دارا یک جانند یعنی همه تخم خدا هستند چون جان در ایران تخم خداست همه مردمان تخمهای درخت زندگی یعنی خدایند که جانانند معنی جانان این بود خدای ایران جانان است همه جانها در او با هم میآمیزند یک جان می شود همه مردمان تخمه خدا هستند تخمه جانان هستند چون خرد تراوش مستقیم از است پس جان و خرد هر انسانی مقدس است و هیچ قانونی و هیچ قدرتی و هیچ خدایی حق ندارد که جان و خرد انسانی را بیازارد این اصل حکومت جمهوری ایرانی و هیچ قانونی و هیچ قدرتی و هیچ خدایی حق ندارد که جان و خرد انسانی را بیازارد گرفتن آزادی از خرد در اندیشیدن آزردن جان و نفی اصالت انسان گرفتن آزادی از خرد در اندیشیدن آزردن خداست و به آزادی خرد انسان در اندیشیدن در پرهنگ ایران مقدس است شهریبر کلمه شهریبر که هزارها آرمان حکومت ایرانیان بوده است به معنای حکومت و حاکم برگزیده شده از خرد انسان ها حکومت و حاکم باید همیشه از نوع از خرد مرگ. مردمان برگزیده شود نه از ایمانشان به این یا به آن مذهب یا به آن ایدئولوژی که در اندیشه تثبیت حقیقت واحد و طبعا بر ضد طبیعت جوینده و آزماینده و نوع آور انسان ها هستند. وقتی ما وقتی که طبیعت انسان را نوع آور و جوینده و آزماینده می دانیم، این انتباق هماهنگی با حکومتی که حقیقت واحد دارد نیست ندارد در فرهنگ ایران انسان ها دانه به هم پیبسته هستند و اون خوشه خداست یعنی چی؟ یعنی اجتماع احتیاج به خدا و شاه و اینها ندارد افراد در هم بستگی و هم در اثر هم با هم به هماهنگی آهنگی با هم می رسند یا به سخن دیگر خدا یا حکومت می شوند. وحدت اجتماع پی دیالوگ انسان ها در جستجوی شیوه زندگی با هم است نه پیایند ایمان به یک رحمت یا ایمان به یک مذهب یا یک آموزه یا یک کتاب کتاب مقدس. بهمن و ارتا که بن هر انسانی هست هر دو اصل ابداعان و آوری هست هر دو به عبارت ایرانی آذرپروت هست آذرپروت منای این نبود که آتش رو میفوزند معنای اصلیاش این بود که مبدع بدین دیلسان فرهنگ ایران که ریشه هزاران ساله در روان و زمیر ایرانیان دارد این چیزی نیست که در ایرانیان از بین رفته باشد اسلام و اینها همه یک پوچه یک این رو تاریک میکنن این روی این آمدن لایه‌های های هایی که این پرده شدن گرفتن تاریک ساختند این زمیر ما رو تأسیس یک جامعه و حکومت نوآور رو تضمین خواهد کرد این فرهنگ ایران فرهنگ ایران که این چنین ریچه‌ای چنین منشی در هر ایرانی دارد تأسیس یک حکومت جامعه و حکومت نوآور را تضمین میکنه. این معنی نیست که یک جمهوری رو ما ایده را رو یک فرمالیته را از خارج وارد کنیم. این حقوق بشر و جمهوری و جامعه مدنی و اینها یک چیز فرمالیته نیستن، شکلی باید ده ترابن. باید برویند باید بجوشند از کجا بزوشند برویم از, از یونان فرهنگ بیاوریم بریم برویم از غرب مثل تیاره و هواپیما و بلدوزر و امثال اینها رو دوشمان بگذاریم میرم. اینا صادراتی وارداتی نیستن ادالت اجتماعی مردم سالاری که مردم شاهی باشد و مدرنیست که فکران از غرب رونوش بر می‌دارند هیچ گونه ای در دین اسلام نداره چنانچه هیچ گونه ای در مسیحیت و یهودیت هم نداشتند این آرمان ها در اثر برانگیخته شدن مردمان غرب از فرهنگ یونان در نوآوری پیدایش یافتند و در اثر این نوزایی یا فرش کرد توانستند بنیاد جهان نوین خود را بگذارند ما در پی همین فرشکرد یا همین تخمیر از بنمایه فرهنگ اصیل ایران هستیم تا جامعه و حکومت نبینی از این فرشکرد و جوانشبیه ملت پیدایش آبست جمهوری ایرانی بر این اندیشه بنا خواهد شد